مو در باختیم تو کجا میدونی؟ اقا فشمان بهم گفت چیکار کنی شاید اون که اینجا رو برده ما رو بخواد؟ شهراممی امکان نداره ااممی برده چیه؟ مثل که بایدت هم نایمه دیوونه یا بچه این خیالت نیست م... چیکا با بکنم شاید هم این بهرامی رو خواست تا کجا اینگر مطمئنی چش نداره آقا پیشمان رو ببینیش چی میگی؟ چی ربطی به ما داره ما باش حرف میزاریم شاید اصلا پول بیشتری بهمون بده آقا پژمان چی میشه آقا پیشمان یه بابای پولدار داره که هواشو داره تا آخر عمر چون قصده آقا پشمان نخورد. نخور آدم می خوبی و مهربونی بکنم یه فکرایی هم داشته میخواست کنه با اون خانومه که اون روز اومد اینجا مم. و تون هیری ویری مایی سهرم از دست داد خیلی تقدیره دیگه کارش نمیشه کرد بگم سامان اگه به احلمی قبول نکنی چیکار کنی نمیدونم وزن همون موقع بهش فکر میکنیم دیگه این نشد به دیگه چه کاری؟ هرچی نمیدونم به فکر میکنیم دیگه مانو بیشتر از این سب نمیکنه اصلا اینجوری خوشش نمیاد منم دیگه اینجوری خوشم نمیان یعنی چی؟ یعنی که اما مانت بگو ما خیلی زود خدمت برخاسته برخواستگاریم نامای سلام شما سامانم زنگ زدم بهتون تبریک بگیم تبریک بسی چی؟ من شما خبر نداریم موزه داره بردین دیگه کسی به من چیزی نگفته؟ مگه میشه پس پس چطور تو با پشمان خبر داره؟ چرا میدونم باشه مهم نیسای برنامی گلوغرم که یه تو نرفته کدوم گلوغرم؟ قرار بود اگه شما موضوعی در بردین من بشم همه کاری اونجا هنوز که به من اعلام نکرده الو الو برای سرم داداش خوبی؟ خود داروش بگو دادا شمشب میای خونه کارت دارم بگو بخوام یه خبری بهت بدم نه اول بگو سوت میای طورت بگه اه بگو دیگه خیلی قربونت برم خب پس میبینم از بله خود عبس. تو مشترک مگه قرار نبود تو هستم پول نزاری اولین پولی که بیاد تو شرکت من پول اون از این پسر کامیار دیگه خبری نشو ازش تعهد گرفتن کاری به کارام نداشته بشه بلن که ازش خبری نیست. خوبه از هستن؟ نه نیست. کجا نکیم میان؟ همین اعلام میان سلام رامین کو. میادش؟ چیارو جدی خریدین؟ این کامپیوترها سربرد. سرور باید روم باشه نه؟ بله خیلی خیلی خوب پس من میبرم. ندادم. من چیکار کنیم؟ بیام حرف میزنیم. نه دامن. کار داری کنی. نه. آخه با این چی کار داری؟ پولی که رامین وارد گذاشت توی شرکت ساعت مردش من من هر روز نمیام. اطمان افته باش اینها رو خیلی دیلیم خواه ببرمشون باشت حسیزم بیا تو داخمه با ما حرف کن یه مسئله بین من رو رامین کن دخالت نکن باشه بس هم کن رامین من دیگه حرفی ندارم با رامین بزنم حرف قبلا بهش زدم تو اینجا چیکار کار رو میکنیم؟ اومده با ببرم بیا برای توزیم لازم نیست تو اگه من آدم حساب میکردی قبل هم برای توضیح دادی نه الان بهت میگفتم بیا کی میگفتی وقتی دوباره پولا رو باد دادی اون پولی که لفته تو این شرکت مال منم بود اصلا یک کلمه به من گفتی همه رو بهت پس میدم دفعه پیش هم همین رو میگفتی این بار فرق میکنه میدونم دارم چیکار میکنم رامین تو جز تو شرکت بابات کار دیگه ای نمیتونی بکنی. کار به اون خوبی، حقوق به اون خوبی. من نمیفهمم تو چه اصراری داری از اونجا بیای بیرون. برای اینکه میخوام برای خودم کار کنم. خسته شدم. آخرش یه کار میکنی باباتم دیگه تو شرکت راحت نده. پول منو به من بده. الان نمیتونم پولتو بهت بدم. من این حرفا خالی نیست. یا همین الان برمیگردی شرکت بابات یا پول منو به من برمیگردونی. دو سه صبر کن پولتو میدم. من دو ماه نمیکنم تو چه که فقط مال من نیست شریکم دارم الان نمیتونم بهت پول بدم باشه منم میرم وسایل برمیدارم چی وسایل رو برمیدارم ای، این وسایل رو نصف قیمت هم ازت برمیدارم میگم یکم سب کن پولتون بهت میدم پس نمیستونی چه ماشین رو بدونم من خب میترسم ماشینم هم بفروشی تو این مدت سریع Tisztelt opkia, Lilla. Hú, hú. Tálom, hogy sikerül megjönnöd, Carves. Mit neveznél? Hello? baba? Van sok húvén. Vasúcsös. Még Bosz, mama. Ho döbbsz, mi hogy چاپو دادم نمیشه نه؟ برو بابا برو فکر کارو برو فکر میگم من خبر ندارم میفهمی خبر ندارم چیو دارم میپچینم چیو به میچینم گل قرار دو من خودو گل قرار تو قراره بود رو گرفتی مدیریتش بدی به من بدم به تو تو خود سه ماه رفتی اونجا تجربه نری بده این شرط رو رقمو گفتم تو کی هستی به خدا میرم چیو میگم چیو میگی؟ میرم میگم کجا فهمیدی تو میبرم بگو بعد پای خودت گیره من هیچی دست گه بخوام تو ج رو با کل گرفتی همه چی چنگ در می چید به تو رو اوور میکن آه تلفن ها جو کنم میفهمم به زنگ زدم میگم زعز ز اوم کار میش یا؟ ببین دیوار ها شبلنده حالا می کاره ببین برنامه هم مادر از زاده نشده اینجوری می بخواد ح تو میزارم که برید تو اقا بری تو برو این پسری کی بود نمیدونم والله من این پسر کارگر مزرعه بقالی هم دوازده سالم بودش که پدرم فوت کرد پلیس راهنمایی رانندگی بود یه شب سر پستش دو تا جوون که حالت طبیعی نداشتن زدن بهش و رفتن خدا رحمتشون کنه مادرم بلا فاصله رفت سر کارو نذاشت ما تهمه و بچشیم درست ما خونمون تو جنوب شهر و تو کوچه پس کوچه ای ولی همیشه دستمون به دهنمون رسیده آقام تو این خونه مونده به خاطر اینکه یادگار بابامه. دوست ندارم بفروشمش. اینا رو برای چی داری میگی؟ اینا رو گفتم که بدونی من چه جور آدمی هستم و از کجا اومدم. که فکر نکنین به خاطر پول رو نه میخوام الان چقدر داری؟ یه اپلیکیشن سامانه هوشمندی که تازه داریم راش میندازیم. با این سامانه ما به همه چی میرسیم؟ خونه، ماشین، اینی که داری میگی مربوط با آینده هست و از نظر من نامعلومه پرسیدم الان چی داری یعنی فکر کن من اصلا موافقت کردم همین دو روز دیگه مراسم حق به شما میرین بله برون خرید جواهر کیک، شیرینی هزار برنامه دیگه فرض کن من اصلا شما هیچ هم نخواستم عقل میکنی دختر من رستشو میگیدی برمیداری میداری پیز زندگی کجا میخوای ببریش آیا میتونی یه جای مناسب برای دخترم اجاره کنی من نمیگم بسیار خونه بشی چون نمیتونی و من همه همچی توقعی ندارم ازت. همه اینا که فرمودیم با گذشته زمان درست میشه اینه که من میگم حرف سی ست, ست میلیون فوله کم کم شد چطور بخوای از کاری که چشم نداره یک چون این پولی برسی؟ میرسی تا جایی که من خبر دارم شما اونجا شریک هستید هفتاد هستید چقدر باید کار کنی و پول به دست بیاری تا سهم دون اندازه ای برسی که من گفتم یکی دو سال مطمئنی؟ نمیدونم ولی تو این مدت میتونیم نامزد باشیم من دوست ندارم کسی که آیندهش معلوم نیست روی دخترم اسمه صدر آقای نظری من اگه مطمئن نبودم که دخترتونو خوشبخت میکنم هیچوقت وقت جدو نمیذاشتم شما چون... اتمینان داری من که اتمینان ندارم حتی زمانی که مطمئن نشم به این ازدواج رضاییت نمیدم آقای نظری من هیچوقت تو زندگیم هیچ چیزی رو آسون به دست نایه بردن. همیشه خدا براش شنگیدم حتی ساده داری به من میل داری زنی؟ نه همچین جزارتی نکردم خدمت. من و دوست دارم. شونم همین طور آره میدونم. ولی تو زمانی که من فانی نشدم، این ازدواج سراده. چرای خوبا؟ پایی تلفن که خوب نبودی؟ موزایده رو باختم دیگه پس من که همه زندگیمو باختم بعد تا الان از بسته میماردم یه ایچی زندگی تو باختی؟ زندگی با تو رو باختم اگه نرفته بودم کیش؟ الان بچه همون میرفت مدرسه اگه نرفته بودی لابود الان میگفتی من مانه پیش رفته شدم از هر اتفاقی که میفته حتما یه دلیلی پشتش هست سی سارو هستانیستم و باختم سی ساله که پدر من اونجور سرپا نگه حق من بود که رو به من بدن زمین ماهی سرا که مال تو نبود برو یه جای دیگر رو اجاره کن حسچار که نمیتونم بکنم با خودم ببرم این همه حزینه، ساختمون، انبار، تشکیلات رو چی کار بود در از الان یک آلم تجربه داری، مشتری داری، شناخته شدی با یه ضرر کم میتونی دوباره شروع کنی. بعد وقتی اینه که کسی که اونجا رو برده یعنی حاضر بودم هر کسی اونجا رو ببره غیر از این آلم قبل انا که بخیل نبودی <تصفيق> اصلا نمیشه با تو بحث کرده. آفاری. با من بحث نکن پاشو بریم دنبال پدرت میخواییم بریم یه رستوران. رستوران چی ما نبود نباد خرجی کنیم بدان همه زندگیمون دارم میباسم بابو جم <تصفيق> پس میمون من باش پس میمون تو باشه منم یه عباش روش دارم کار هتل رو کم میکنم تو فکر یه جای نه آه، یعنی میشه اروزی تو از کارت بگذاری؟ بالاخره اولادیت های آدم عوض میشه زندگی که همشه یه جور نیست دقیقا مثل وضعیت الان ما که تو مخوای کارتو کم کنی و از دو روز دیگه باید باده هوا بخوریم بیدی اینم ممکن؟ بفرمایید. <تصفيق> این حالا ما هم گفتو که کدوم رستوران می‌خوایم بریم؟ دیدینو واگذار به من من گفتم رام رستوران بعد بدم تو که رستوران بعد نمی‌داره. آشپزی کردم یه چیز خوب ساختم. من هم از بهرام این 100 تومان از پول گرفتم. ماهی داریم تو ما. گفتم بهتره بابا 100 تومن روز دادی. من همون که پای تلفن باه تای کردم قبلا آقا آقا ببر به هر کنده احیتا ثینا کردن از یکی دو دفعه دیگه بتونی بار بگیری هست. سلام. شدا. سلام. ماهی رو با تحویل بده. اه واسه چی؟ بعد شانسی دیگه مزایده رو باختم. ماهی سرا مال بهرامی میشه. پس واسه همین کارگر امروز با بهرامی داشته دعوا میکنه. کارگر من؟ آره. کی؟ آقا من دو سه ساعت پیش ماهی سرای بهرامی بودم. بیرونش بهرامی داشت با کارگر شما کتککاری می‌کرد. کدوم کارگرم؟ تازه اومده قد بلنده اون دفعه اومده بودم سفارش بدم بهلی که ادرفت شاکی شدم ساما؟ اسمشو که من نمیدونم سر چی دبا میکردم؟ نمیدونم آقا اینشو دیگه من نفهمیدم خب. خوب آقا مرتزا آقا آقای آقای رو داشته باش. چشم آقای سایدیو؟ شما برای باشه داداش امیر داداش خی قرارمون بله ولی موضوعی رو وقت دوست رو زیگه کار خود آخر کردی حالا آروم شدی هنوز نه میخوای بیری سراغت پیر مرده به رو بزنم انگو بابا هرزه خواهی چی کار کنیم زمین و مذره رو از چنگشون دره بردی دیگه وقتی دنم خونک میشه که بایستم تو مزرعه کار کنم ول کن امیر میترسنگی درد سری درست کنیم درد سر رو اون درست کرد. خیلی من پنج سنم تو که دیگه صاحب اونجا نمیشی آره صاحب اونجا نمیشم ولی اونان هم نگذن بیرون برای چی صاحب اونجا نشم باید شادیم ا بیچاره به خاطر من داره بیکار بشه حقا به خاطر بیکار شدنش دیگه بیکار داره میشه دیگه داداش دمید کم برموشی خیشون از وقتی که از دفتر رفته اصلا دیگه جوابمونه داده منم بودم جواب تو نمیدادم کارو تو عوض کردی هست و نیسته تو گذاشتی تو این شرکت به زنتم نگفتی ما جوابتم بده خب جز خونه مادرش جایی رو نداره بره. اونجا رو بگیر مادر نمیگیرم جزم زنم به بردار برداره چیزی بگی بدتر کاری رو که کردی پاشفایزا Alon nam zaajn bezanm -be, biwi zenew w سلام ماده شما گفتین آرش بیباش حرف بزنین منظورتون از حرف زدن اینا بود خب شرایط تو باید برات توضیح می شرایط شرایطو واسهش توضیح میدین یا خوردش کردین خورد کردن چی عزیز من کسی که میاد جلو برای عروسی کردن باید حدعقلا رو داشته باشه این پسر اصلا هیچچی نداره بابا مگه الان میخام ازواج کنیم تو امو قوزش رو شده چرا اینقد سنگ اندازی میکنین واسه ما من بهتون گفتم آرشو دوست دارم یعنی اینقد زندگی و احساس من براتون بی اهمیته همش پول میدونم مشکلتون چیه دیگه ببینم کنین چه جور دنبال مال و ثروت از این رو بهونه کردین بس کن رونا ازدواج شوخی بردار نیست اونم برای بار دوم یه بار تو زندگی می اشتباهی کردم تو کی می خوای اینو کنی تو سر من اصلا هم چی چیزی نیست معلومه که هست آدم پیش شما اشتباه کنه دیگه بهش اطمینان نمی کنی همین رامین یه بار ورشکست شده چقدر تو سرش با من میکنی این ازدواج از بار اول مهمتره اون قابل جبران بود ولی این خدایی ای نکرده اگه به جایی نرسه و اتفاقی بیفته دیگه تمومه رونا مادر این پسر امروز آمده بود شرکت دیدن من برای چی؟ بر اینکه دخترمونو از ازدواج با آرشمان صرف کنیم آرشبه نگفته بود مادرش مخالفه؟ چرا؟ چون رونه یه بار ازدواش کرده جدا شده؟ راجع به این موضوع حرفی نزد پس مشکلش چیه؟ گفت ما از نظر مالی به هم نمیخوریم طوری برخورد کرد که خیلی به این برخورد فکر کرده من آدمی هستم که شخصیت آدم ها رو له میکنم شما چی گفتی؟ مقابل حرف حسابی و منطقی چی باید بگم؟ چی شد مادر؟ خبری از مدانه شد؟ خونه باباشه گفت بر نمیگردی تا من برم شرکت ببونم تهیه‌های ساده و طعم‌دار آلیس آلیس برای خانواده همه از تو راغ به غذا زیتون لادن طلایی طعم واقعی زیتون زمش بی نزیر لادن جانم شروین جان سلام لطفا جان امروز دیگه درسته آره یه سال شد حالا برنامه چیه یه کیک و دور همی برای تمنیات هم که همین کاری کردی این فرق میکنه خب فکر کنم همه اومدن امروز یه سال از رفتن مهناز میگذارم ولی همونطور که میدونیم با رفتنش کاری کرد که چند نفر دیگه به زندگی برگید حتما یادتونه که قبول کردنش برای من چقدر سخت ولی حالا دیگه از تصمیم خودش و خودم خیلی خوشحالم فکر کنم هر سال باید برای مهناز دو تا جشن تولد بگیریم یکی برای خودش یکی هم به افتخار زندگیایی که بخشیده اهدای عمر ادامه‌ی زندگی است در بابا ای... سامان گفتش که مامانه ژیرا بگو به زودی میام خواستگاری این به زودی کی هست حالا یه ماه دیگه یه سال دیگه بابا شما ندیده سما خوشت نمیاد من از آدم بدا تکلیف خوشم نمیاد سی و چند سالش هنوز یه کار درست حسابی نداره که هیچی هر روزم میگم بگیم میخواهم یا پاسداری حالا میگهد میدهش الان میخوای به آرشت بله فکر میکنه موقعیت مناسبه؟ نیمان چیکار چی کار کنم؟ بیاست سامان درست دیگه من بیا. بگم من میخواهم بگم عوضای خونه به هم ریخته است. نمیخوام چیزی بفهمه که از این پیش پدر رونا؟ همین مونده بود مادرم جلو مردم منو خورد کنه اتفاقا من رفتم جلو خورد شدن تو گرفتن اینجوری؟ که بگی من آ ساسم؟ که بگی ما به هم نمیخوریم؟ من همچی چیزی نگفتم خلاف و رسوندن رسوندمقی منیش همینه چرا این کارو با من کردیم ما؟ چون مشکلت نداری اختلاف طبقاتی نیست از این در با پدر رونا در اومدی چون میدونی چی خوشش خوش یا میاد تو جپه شما مشکلت مطلقه بودن روست من نمیدونم چرا با این قضیه مشکل داری؟ در حالی که خودت دختر داری آرش این خواهر منه اومدی مگه بخت بد نصیبش شد یه آدمی از راه رسید و بولاست اینم بهش اعتماد کرد ما باید چیکار کنیم؟ به خاطر اشتباهش باید تردش کنی ولش کنی بگیم حقش قورچقی نداری حق عزت نداری چرا چون مطلقه ای آره من رو اونا رو ول نمی‌کنم مامان اومدم بهت بگم که به خاطر تفکرات خودت بلند نشی بری پیش پدر و مادرش که پسر زو کنی نکنین کارو سنی. سلام ببین من از صبح خیلی به ریختم نه نه نه تو که باید میگفتم میگفتیم میدونستم فقط یه سوال به احرامی چقدر از من بیشتر قیمت داده بیست مینام به خود این بیس سر رو از دست دادم خیلی خوب برو خدا تو بس با چی گرفتم با هم بزنیم نمید کرم برو بذارشون جماع یاد بسرم سر. هم سرم زود برم چیزی خاصیت باش باز خونه برم دسته در نکنم بریش می کنم بیم نمید کرم بذار چشمتو با کنی بعد لاف بدتره کن لاف چیه؟ شادیه الو سلام خوبم نبا با چی دفترم نگه سالم پیشم سلام برست سلامت بشم حواستت به ما اون هست باشه پس خبرم نزن قربانت خدافز آخه تو کی نگا داری جونت برامونه در میره برای چین این کارا رو می‌کنه وقتی حرفش منطق نداره من باید چیکار کنم تو اولین کاری که میکنی اینه که باید سنگات رو با بابای رونا و بکنی بلند شده رفته گفته من مخالفم من دیگه چی بگم ببین حساسیتشون چیه اونو برطرف کن میگه لقمه دهنم دیگه نیستین اونا پولدارن ما بی پولیم بلند شده اینا رفته به باباش گفته ولی همش به اون است مشکلش اینه چرا رونا مطلقه است این مصالات که دیگه نمیتونی کارش بکنه که به مرور زمان براش حل میشه ولی بر بی پولیت بعدی فکری بکنی صالح جان من تازه کار کاسبی را انداخته. نباید به هم زمان بدن تا کارم بگیره خب همینو برو بشبرون به کی بگیم به بابای رونا قبول کن دیگه آرش جان تو خودت دختر داشتی به یه همچین آدمی دختر میدادی؟ بورو بهش بگو من کارو کاستبی متازه رو انداختم ازش مهلت بگیر ببین چی میشه اگه کارم نگرفت سلام سلام صبح بخیر شرشم حجا بدی نخوردی که راحت شد دا دست درد نکن. مواظب خودت باش خدا به دست حجا دامنت قیام صادق شب اینجا بودی من باید با بابا طرفتن دفتر بوده آقا ساله هم پیششه غیر از اون کسی ها نداره الان زنی زده بود احوال پرسی نگرانه نگران دیش اب اون جوری رفت هر چی هم دیدش خواست به من گفت من بودم دیگه مامان جان بیچار حرفی نزد گفت لغمه دهن هم نبودن رو بحانه کردین تو متلقه بودن روناس مگه غیر اینه. خدا هرچی. من با این ازدواج مخالفم. قربونت برم مخالفی؟ برای چی رفتی پیش پدر رونا؟ اصلا اومدیم دو روز دیگه شما نظرت عوض شد. اومد... نمیشه چرا من مطمئن حرف می‌زنم؟ مبون من. اصلا چرا رونا رو دیدی؟ خوشت اومد؟ نیرش به دلت نشه. ماای شادی بس کن. سر کارت باشه منم یه باری که فشارتونو بگیرم ردیف بود می‌ره. ردیفو ولش کن. ای فدات با کی لجب می‌کنی؟ روز سلامتی خودت. بزام این کار شادی بر سر کارت. بله بله چقدر شینه آه آقای شریفی چعجب سری به ما زدی را ما زرد شده در وردی چطور چطور میشه تو 20 تا بیشتر از من میدی خوش شانسی من <laughs> بعد شانسی تو الان یارو چی کارگر من درست اینجا چیکار میکرد کدام کارگر سامان آم بچه پهروه اما بود استخدامش کنم قبلا بهش گفته بودم میخوام الان دیگه نمیخوام اون روش رو زیاد کرد اطمئنی فقط برای استخدام بوده کار دیگه ای با من نداره ممکنه رقم من رو فهمیده باشه یعنی میگی من تقلب کردم؟ اختلاف رقمون خیلی کم بود بی خودشوک نکنم برو زودتر کارات رو بکن نتیجه که رسمن اعلام بشه میام اونجا مستقر میشم مایسر هم از دستم رفت از تو نیستم ولی مهم نیست من میدونم دوباره یه جای دیگر را مندازم ولی تنها چیزی که الان برام مهمه که کسی رقم من به تو گفته یا نگفته؟ نه نگفته تو قبلنم با پول کارت رو رو دیگه درید تو آمت مزنیم محلوم A legjobb <gülüyor> Sala e, chod, man, e... من... این شما بعد این مبلغ فیشور و مبلغ فاکتور رو چک کنیم همه شو لطفاً چک کنید که اشتباه پیش نیاد بعد به آقا مرتزا بدیم م. که آقا مرتزا حتما علی فاکتور داره بذاره بیش اینا بیاریم این بالا من امضا کنم دیگه خیلی خوب فرد یه تلفاز ثابت از این کار رو بزنیم و این اینجا شما ثابت هستش ممنون در نوز بگیریم بیشان آقا Köszönöm, hogy beszélsz velem. Köszönöm. دوستالا چه اتفاقی افتاده که فکر کردی بیای با من؟ اینو اما باید کارمون درست شدن چرا منو ازت پرسیدم که اینا مشکلی ها دارم رو نمی‌ذارم من به اون چیزی که می‌خوام برسم پول همه رو میدم فکر می‌کنم یکی اینجوری الانت کنه خلاصو دیگه فکرشو نکن اصلا لازم ندارم کامیار دست سسر مامانم برانم گذاشتم که نمی‌شه وابسته که شروع کردمو نستو نمیکنم خود مهریهشو بذاریش تو یه تاری آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه و آرید دستای خون پر از گل داوودی شد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 Mehrabuni bőnöd, égés, Nézni nincs, a harim tikkéjein, Júrčiné, égés, Mérve bőnöd,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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش اقای خدا فیزی تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش Mehrabuni, yes, nozanini, yeah, yes,